قسطهای هزار یک شب شب یکم حکایت بازرگان و افریت ای ملک جوانبخت شنیدم با زرگانی سرد و گرم جهان دیده و تلخ و شیرین روزگار چشیده سفر به شهرهای دور و دریاهای پرشور می کرد. وقتی او را سفری پیش آمد از خانه بیرون شد و همی رفت تا از گرمی هوا مانده گشته به سایه درختی پناه برد که لختی برا ساید. چون براسود سود قرصه نانی و چند دانه خرما از خورجینی که با خود داشت به در آورده بخورد و تخم خرما بیانداخت. در حال افریتی با تیغ برکشیده نمودار شد و گفت چون تخم خورما بیانداختی بر سینی فرزند من آمد و همان لحظه بی جان شد. اکنون تو را به قصاص او بایدم کشت. بازرگان گفت ای جوان مرد افریتان من مالی بی مر رو چند پسر دارم اکنون که قصد کشتن من داری ده که به خانه باز گردم و مال به فرزندان بخش کرده و های خود بگذارم. و پس از سالی نزد تو آیم. افرید خواهش او را پذیرفت. بازرگان به خانه بازگشت. مال به فرزندان بخش کرده ماجرای خیش را چنان که با افرید رفته بود با فرزندان و پیوندان بیان کرد. چون سال به پایان آمد به همان بیابان بازگشت و در پای درخت نشسته بر حال خود همی گریست که پیری پیدا شد و غزالی در زنجیر داشت. به بازرگان سلام داد پرسید که کیستی و تنها در مقام افریتان از بحر چیستی؟ بازرگان ماجرا باز گفت، پیر را عجب آمد و بر او افسوس خورد و گفت از این خطر نخواهی رستن. پس در پهلوی بازرگان بنشست و گفت از اینجا بر نخیزم تا ببینم که انجام کار تو چون خواهد شد. بازرگان به خیشتن مشغول بود و همی گریست که پیری دیگر با دو سگ سیاه در رسید و سلام داده پرسید که در این مقام چرا نشسته اید و به مکان افریتان از بحر چه دل بسته اید. ایشان را باز گفتند. هنوز پیر دیگر ننشسته بود که پیر از سواری در رسید. سلام کرده سبب بودن در آن مقام باز پرسید. ایشان ماجرا بیان نمودند. ناگاه گردی برخواست از میان گرد همان افریت با تیغ کشیده پدیدار شد دست بازرگان بگرفت تا او را بکشد بازرگان بگریست و آن هر پیر نیز بر حال او گریان شدند پیر نخستین که قزال در زنجیر داشت برخواست و بر دست افریت بوسه داده گفت ای امیر افریتان مرا با این قزال طرف است آن را بازگویم گویم اگر را خوشاید از سه یک خون او درگذرد. افرید گفت بازگوی حکایت پیر و قزار بیر گفت ای امیر افریتان این غزال مرا دختر ام و سی سال با من همدم بود فرزندی نیاورد کنیزکی گرفتم آن کنیز پسری بزاد چون پسر پانزده ساله شد مرا سفری پیش آمد از بحر تجارت به شهر دیگر سفر کردم و دختر ام من که همین قزال است در خرد سالی ساهری آموخته بود پس کنیز و پسر مرا با جادو گاو و گو گوساله کرده به شبان سپرده بود پس از چندی که من از سفر آمدم از کنیز و پسر جویان شدم. گفت کنیز بمرد و پسر بگریخت. من از این سخن گریان شدم و سالی اندوهگین بنشستم تا عید قربان در رسید. به پیش شبان فرستادم و گاوی فربه خواستم که قربانی کنم. شبان گاوی فربه بیاورد که کنیز من بود. من آستین برزده دامن به میان محکم کردم و کاردی گرفتم که آن را قربان کنم. گاو بنالید و بگریست. بر او رحمت آوردم و خود نکشتم. شبان را گفتم که او را بکشت و پوست از او برگرفت. استخانی دیدم بیگوشت. از کشتن آن پشیمان شدم ولی پشیمانی من سود نداشت. پس آن را به شبان داده گفتم گوسالهی فربه از برای من بیاور. شبان گوساله آورد که آن پسر من بود. چون گوساله مرا بدید رسن پاره کرده پیش من آمد. بر خاک قلتیده خروش کنن همی گریست. من به دور رحمت آوردم و به شبان گفتم این را رها کن و گاو دیگر بیاور. قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است. دنیازاد گفت ای خواهر چه خوش حدیث گفتی. شهرزاد گفت اگر امروز ملک مرا نکشد شب آینده خوشتر از این حدیث گویم. ملک با خود گفت این را نمی کشم تا باقی داستان بشنوم. چون روز شد ملک به دیوان برنشست. آن روز تا پسین به کار مملکت مشغول بود. وزیر همه روز منتظر کشته شدن دختر ایستاده هیچ خبر نشنود در عجب شد پس ملک از دیوان برخاست به حرمسرای شد و با دختر وزیر به حدیث گفتن بنشست